قسط های هزار یک شب شب پنجاه و هفتم بازرگان در قایت شرمساری پیش رفته در پهلوی نزهت و زمان بنشست و گفت ای خاتون نام تو چیست؟ به پاسخ گفت از کدام نام من پرسیدی؟ بازرگان گفت مگر دو نام داری؟ گفت نامی که از پیش داشتم نزهت و زمان بود و اکنون مرا نام وسط و زمان است؟ بازرگان چون این بشنید دیدگانش پر از سرشک شد و با او گفت تو را برادری هست رنجور نزهت و زمان گفت آری ولی روزگار میانه من و او جدایی افکنده و او در بیت المقدس بیمار است بازرگان از گفته خوش او به حیرت اندر و با خود گفت که بدوی را سخنان راست بوده است پس نزهت و زمان را از مملکت و پدر و مادر و از بیماری و قربت برادر یاد آمده آب از دیدگان بریخت و این عبیات برخاند نصیبم از ستم چرخ جور شد شب و روز نصابم از فلک سفله هجر شد محو سال زمول که خیش به قربت فتادهام زینسان که نیستم ز جهان یک درم ز مال و منال عظیمت وطن خود نمیتوانم کرد به مانده عاجز و مسکین چو مرغ پر و بال ز دهر جور و جفاجو وفاتمع کردن زهی تصور باطل زهی خیال محال بازرگان چون این عبیات بشنید گریان شد و دست درآورد که عشق از رخسار نزهت و زمان پاک کند نزهت و زمان روی به پوشید و گفت یا سیدی این کار از تو دور است و بدوی ایستاده بود چون دید که او روی از بازرگان به یک سو برد و به پوشید، گمان کرد که نزهت و زمان نمی گذارد که بازرگان روی او ببیند. برخواسته با مهار اشتری که در دست داشت، نزهت و زمان را همی زد تا اینکه آهن مهار به نزهت و زمان خورد و نزهت و زمان را به زمین بیانداخت و ریگی، بر جبین نزهت و زمان فرو رفته جبینش بشکافت و خون به رخسارش همی رفت و همی گریست تا بیهوش شد. بازرگان نیز بر احوال او گریان شد با خود گفت که این کنیزک را میخرم خرم اگرچه همسنگ او زر بایدم داد تا او را از این ستمگر خلاص کنم. آنگاه بازرگان بدوی را دشنام بداد چون نزهت و زمان به خدا آمد خون از رخسار خود پاک کرد و زخم جبین با کهنه فرو بست و سر به آسمان برداشت و با دل محزون بنالید و این عبیات برخاند علای گردش گردون دوار ندانی جز بدی کردن دگر کار نگردی رام با کس ای زمانه نبندی دل به مهره هیچ هوشیار به چشم تو چه نادان و چه دانا به پیش تو چه برتخت و چه بردار چون شعر به انجام رسانید به بازرگان کرده با او گفت که تو را به خدا سوگند میدهم که مرا از دست این ستمگر وارهان اگر این شب پیش او بمانم خود را حلاک کنم تو مرا خلاسته خدا تو را از ورته های دنیا و اقبا خلاص دهد از بازرگان برخاست و با بدوی گفت یا شیخالعرب است تو چیست این کنیزک به هر قیمت که خواهی به من بفروش بدوی گفت او را بگیر و قیمت به من باز ده وگرنه او را به صحرا برم که در همانجا بماند و به اشتر چراندن و سرگین جمع کردن مشغول شود بازرگان گفت پنجاه هزار دینار زر قیمت این کنیز از من بستان. بدوی گفت این رأس المالو نخواهد بود. اون نزد من نوت هزار دینار قرصه جوین خورده. بازرگان گفت من با تو یک سخن گویم. اگر سخن من نپذیری به والی دمشق اشاره کنم، که کنیز از تو به رایگان بگیرد بدوی گفت سخن بازگو بازرگان گفت صد هزار دینار تو را دهم بدوی گفت به این قیمت فروختم بازرگان به منزل بازگشت و مال آورده بشمرد بدوی چون زرها بگرفت سوار گشت و با خود گفت که به شهر قطر روم شاید برادر این را نیز بیاورم و بفروشم. بدوی را کار بدین سان گذشت. اما بازرگان چون نزهت و زمان را بخرید، چیزی از جامعه خود بر سر او بیانداخت و او را به منزل خیش برد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.